أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآل الطيبين الطافرين المأسومين ومعات الدالمة على الزائح المرشبين اللهم اعفرنا جميع المشهرين ومحمد برحمتك يا رحم الرحيمين ان بحث در که از سروع بشه و یه شدیم رفتیم رو توضیح این که این حصولی که ما به اصطلاح در اصطلاحات حصولی به کار میداریم کیفیت تحریح حقیقتش شد رو جهر شیوری یه توضیح را که به بعد از اصول که اصطلاحات سه بود داده شد که در بحیه جهان کارایی داشته باشد هم بچه کرارم من حرض کردن ما اصولی رو که الان داریم که همین اصحاق صحیح قادریت قاید و ساله تمامی اصول در شروعات موضوعی جایی میشن و لذا هم توی بحثی اصول متعرضشون میشن چون هر همینطوری که مردمو در اول رستا دیگاره اعلمان در مکنده در طبط اله حکم شرعی کلی بناشون به اینه که در بحث اصول متعرض به حکام کلیه بشن نه جوزیه لذا واضح بحث های اصول عملیه نمیشن این خسنطه اصول عملیه چون اینها در شباهات موضوعی هم از کنید در اصول،, در اصول تنزیلی تنها اصلی که در شباهات حکمیه جاری میشه اگر جاری بشه استثابه بیگه ایر از استثاب نداری البته استثاب در شباهات حکمیه و موضوعیه هر دو جاری میشه موضوعیش مسلمه و بعضی از موارد موضوعیه اون شد که در تهارن چکه در حده هست با تهارن سابقه اون اصلا منصوصه از پیغمبر اکران نرسده و از رنیمن نرسده اون بلخصوص شون منصوصه تحکیل هم وارد شده در روایتی ما داریم یاک انتحدث وضوع هم حتی تصمه اصول هم او تجدری هم تحکیل شده یاک انتحدث وضوع هم بس منابراین اصولی که ما در اصول میخونیم به طور کلی اصول در شباط و حکمیه است و ما درداریم. من عرض کردم مراد از اصول در شباط و حکمیه اصلی جالبه که خود و حکم رو به عنوانه ثابت بکنه مثلا میگه این حرام، حرامه این واجب، این مستحب اینجوری اما اگر به عنوانه بخواد اثبات نکنه اون دارمش افتیاط هم اینطوره. میگم مثلا من می‌دونم یا مثلا فرض اون دفترم نوشتن اول ماه نماز نماز انجام بدن یا نیاز نیاز به صدقه حالا اعتمادش خدا می‌تونم بکنم خب می‌گیم یا مثلا روایت داره که در زمان حجرت مثلا با مسئله نماز جمعه یا نماز ظهر میگیم چون مردد بینهما هر دو رو بکنیم. در اختیار اشتباه نداره اصول به این معنا اشتباه نداره اصول در شرایطی بکنیه این مبنا که به عنوان مجهول، به این معنی اشکال نداره عنوان آموز اما محل کلام کجاست؟ محل کلام که مفاد ارس خود رو بکن باشه خب مفاد است خود رو بکن باشه این منحطه در اقتصابه ما دیگه قدر از صاحبه نداریم مثل مثال معروف که المرأس ها یه را ورسی ها بعد نقاع ها و قبل اقتصاد ها. اونجا شما خود رو حرمت رو صاحبه شمی این یا مثلا خوابی که بر اثر اصلا آبوده پنج کل بوده بر اثر خوبی رنگ قلمت شده بعد از گذشتیه بود رنگی سفید شد شما حکم کنید به نجاست این نجاست حکمه المار متغیر اللویزال زال او من قبل نفسه یکم به بقای نجاسته این نجاست حکمه پس وقتی ما میگیم قصوی در احکام در شبات حکمیه مراد است که متعرض خود حکم بشه و ما این بحث بحثه بحث مفصلا اصول مفتصلا دادیم که طبق قواعدی هم که ما اونجا تحسیز کردیم مطلب درست نیست اگر هم ثابت بشه فقط استصحاب هم منحضر در استثاب که در درستات قبلی هم سابقا اشاراتی شد که البته استصحاب رو ما الان میگیم فقط و الله یک وقتی هم, هم هست دارد. كل اصولی که نظر من به نظرم روزو اصوله ممکن است از هر واژه‌ای که انجام میشه 3 تاست دیگه بیش از این عددی نیست یکی استصحاب یکی قیاس البته قیاس در کلمات شیخ انصاری به والدین قبل و بعده و همه برای حماره به اصطلاح غیر حجت شده اماره غیر معتبر اما ما به نظر ما قیاس و استصحاب یکی ها. هر دوشون اصل تنظیری هستند یکی هم قیاسه یکی هم اساس ها در ثبوت حکم ما دیگه اصلی که بخوایم یک حکم شرعی رو باشه اثبات بکنیم حکم کلیقی از این ستا نداریم منحصر بی این ستاست اصاطال هلنش پر توها توکنی نداریم چون قاعده هل داریم پس سه اصل بیشتر ما نداریم اصاطال تهاره تقریبا ثابته چون اصاطال قبول کردن از کردم کم چند بار اگر قبول اصاطال نبود چون حدیثش یکیست ما در سالته فقط یک دانه حدیث دارید اونم مال امار ابن فتحی ثاباتی فتحی, فتحی, فتحی و در میان مسادر اصحاب ما نیامده اونم با این محن کلوشه نریف، نویف شاید نموزوقات خالفی بکنه به شباز حکمیه نباید از اصحاب همون که هم یکی قبول میکنیم، اونم مجرات شکر کتاب تحارت بار تحارت دیگه به در جای دیگه نمی بیاسن که پیش عثاب ما حجت نیست استصحاب هم از قدیم بین عثابا محل کلام بوده شاید بیشترشون استصحاب و حجت نمی‌دراسه تا اخباری ها اخباری ها به شدت حمله کردن و گفتن استصحاب جدید واس تا اصولی ها مردم و به قالی و بعدیا مینا استصحاب در شواهد بکنی قبول کردن مثل شیخ و این ها مثل مرنایی و ساز دیگران در شواهد بکنی، استصحاب قبول کردن تا عقیلیشون و قبول نره البته والما شاگرداییشون باشون ملابشه کردن و رو قبول نکردن ما هم بهذین اونیم که صار در ش حکمیه حجت نیست. اگر چیزی حجت داشته باشید پردم و اساس تاها را از این تشکیفاتگگذارره بود و الا ما اصلی در ش ها که خود حکم بود تش ب کنید نه عنوان مجبور خود حکم رو ثابت بکنه همین ستاست یه از این بینید اوضایش هم من اجمال از اینجا حرف کردن شرطی داریم، که اصول جزء ابداعات نفسه و توضیحی دادید که ما یه معلومات رو میگیریم که به اون معلومات ابداع میکنیم دیگه چون توضیحش نفسر گذشت. دیگه تکرار نیموند از سالت و سهی فیل غیر از کردن آه خوبی تربیر دلیلش اجماع اجماع و برسا سیره هست از کردیم اجماعی در اینجا وجود نداره ظاهرا اگر اجماعی هست عمل فقه ها به ما همون اغلا به ماهم همون و متشبهه چون زندگی همین بوده فقهان هم دوزه و عیمه علیه سلام و پیرنبر اکرم از این عرض نه نفرموزن ظاهرا همون سیره است. و از مرموم استاد آن بجنانی نرکردی سیره و لزوم اختلال نظام نرکرد ما این دو روز توضیحاته یک کمی از دست خالشی مفصل دادیم ارجاع سیرم به همون اختلال نظام دادیم خیلی محصل توضیح دادیم که مثل این اصول رو که ما ابداع میکنیم احتمالاتش ارز کنیم احتمالات شعر یک بگیم این اصل هست معناش رو نمیدونیم دقیقش نمیدونیم ای بعدی این شاهد ظاهر بعدی کلمه بریده این اصلا بسیار دور از ذهن دور از نکات نیست. دو ما این اصل رو دقیقه شدید. هم همه سکدور از طرفیم. یا اسمشون بذاشیم یک نقطه درونی. این هم از کردیم بریده. این نیمتونه کار رو تولید بودیم. سه. نقطه و اون این که چون این عقد از اراده سادر شده تا سری نباشه آثار نمیتونه بار بکنیم. اینم هم حضر بگی نیست. نقطه سه هم همه به تنهایی کافی نیست. چهار. اضافه کردیم او اختراع نظام اگه این کار مثلا نظام به هم میخورده یک نقطه برونی داره از به طور طبیعی این اصولی که در جامعه پیدا میشه قاعدتا نقطه همین هم میباشه چون اینا نقطه اصولی هستن که در حالت جمعی به اصطلاح ما یک پدیده اجتماعی هستن چون در پدیده اجتماعی باز به اصطلاح یک حلقه وصلی در جامعه باشه جامعه نمیشه متفرق باشه تک تک حسابش بکنه. مثل دانه های زنجیر اون به اصلاح نخت اینها رو جمع میکنه اون نقطی که این دانه های زنجیر رو جمع میکنه یه فضا همون حیعت اجتماعیه یعنی <تصفيق> <تصفيق> ما توضیحش از این تاضیی هم پیلوزم کردیم گفتیم اجتماعی یک امر وهمی البته بحثه حقوقی اجتماعی در بحث جامعه و قانون ها تو بحث خارج که مثلا فرض کنید خود به خود لویییا ارث با جنگی رفت محل خودش موجوده هم اگر شکر رو با سرک جمهوری تخانگی میشه چیز دیگری ای میشاله نمیشه اون بحثی که در علوم طبیعی هست و حتی قدمهای موسسه شفر رئیس و دیگران مبانی خاصی داره اون بحث دیگه ای فقط به مانع هست که اشتباه نشه در مانعنوسی بحث ایناست که آیا هیئت اجتماعی به معنی هیئت اجتماعی خودش احکام داره از همین ظاهرش هم. هیات اجتماعی امر رحمی نیست، خودش موضوعه مثل دیوار. غیر از تک تک آجر که دیوار تشکیل ده خود دیوار باید صاف باشه. این اصول رو بشر درست می‌کنه یا اصول یا امراض باشه موجود خبر سره. که مرحوم استاد دیگه امر تعبده و غرض گفتین اونم غرضه، به این معناست. نه به این معنی که معناشو نفهمیم یا به خاطر رسافت باشه یا نکته مشهودی باشه. نه این طور نیست ظاهرا برای حفظ جامعه است. تو حجید قطعه هم ما گفتیم هم ما محفظ محفظی که برای اختلاف که اگر قطع خود جد نباشه واقعا خود زندگی به هم میخوره ما اگر اساس و صحر رو یعنی اگر ابداع صحت نکنیم وضع جامعه به هم می‌خوره. یعنی هر عقلی هر معاملی بخونم این جامعه باید باید دخلی بخونم این آقا درست خریده درست عقل نکاح جاری کرده درست عقل طلاق جاری کرده این مذع جامعه رو به هم میزنه لذا ما میاییم یک نوع حالت ابداعی خود رو بگیم این عمل صدیه از کردیم این خلاصه بحث رو اینجور کشیدیم پس نقطه سیره سیره هم نقطه شدوم اختلاله خلاصه بحث مفاد این سیره هم عبارت سهت عمله روایتی که ما داریم در اساس و مفادش این که مرتکب حرام نشده عملش صحیحه نه بله اساس و صحیح پی فعل نفس قاعده فراغ و تجاوزه مفادش به حد عمله. لذا ما یک اساس و صحیح فعل نفس داریم که اسمش قاعده فراغ و این تعبودیه این مفادش به حد عمله. یک یکی اساس و البته از قاعده فراغ اغلایی هم هست تجاوز هم همینطوره اما فراغ بیشتر اغلایی داره توضیح هی جوره یک اساس و سهه فی فعل اساس و فی فعل غیب اواز از یک قاعده سیره اغلایی که اگر بنابوش در اساس و سهه اعتماد نکنن وضع جامعه به هم میکنه راست دیگه درست هایی دیگر یعنی هم هم هست اینجا مثلا آیا تو این اساس و باید اتحاد مبناه باشه؟ حالا من ازش تعبیر کردم شون تحبیر خودمم یا سهت ولو اتفاقا ولو تصادفا ما از از زواهر مجموعه عدله در میاد و از سیره که سهت ولو تصادفا هم کافیه خب که از یا درستانات بسم الله گفتن شرط رو به بگران شرط نزدن محضرت ما زباده اونا رو میخوریم یه روات همی داده الاسمان انها اولا از بردری کلهم یا بردری کلهم سمون همه بسم الله میگه اما میگه هم داخلیم. معلوم میشه که اسالت و صحه خود در قطعه خود جالی میشه و انتباغش با اون واقع تصادفی باشه مثلا سالی و جاری به نیست ولکه این تصادفان ممکنه بسم الله گفته باشه دقت بکنیم یعنی مجموعهی که ما در قاعده صوب مسلم داریم در یه مسلمین ها داریم تصادف هم کافیه لازم نیست البته این مدر رویت معارض هم داره توجیحی داره که حالا جاشون که بحث نیست من فقط اشاره آهده فرم اون نقطه که شد تا اینجا مجموعه چندزار بحثی که که این اصول به این ترتیب دوست میشه ما یک مجموعهی که در ذهن ما هست اینا رو پر من م از اینها یه چیز اضافه می‌کنیم این اسمش اصله یه مطلب رو الاه می‌کنیم اسمش اصل اصل میشه درست میشه چیزی داره حساباتون شامل سیرل مستمر تصرف شاره ام شاره هم هست اوغلا هم داره شاره انزاجی هست سری اوغلا انزاجی شاره انزافی. این سیرو انزاجی حالا که این درمانی هست این مباحث دیگه روشن شد ببینید تضییقش درمانی هست علاوه بر دستورات علمت بگی برای ولی فرقی نداره کتاب مکاسد مطرح کرده ماشینی و شخص داده به قاضی قاضی میگه این هدیه صحیح هست طرف میگه نامن رشه بیشون دادن حدیه هم نبوده هم نبوده این رشه بوده سر این بود چون دو تا اصل با هم معارضا بلکه غالی زمان هم هست گفتن ما اصل اصلی حاکم داریم که اساس و باشه. باشید سر اینجا شد که آیا اساس سهر در این فرق جاری نیشه یا جاری نمیشه اونا به این افتفاق کردن چون محور واحدی نیست اتفاق رو بر عقد ندارن نمیشه اساس رو بر کرد. ندارن گفتن نه افتفاق بر عرض نمیشه هم در بر سهر هم در فعل مسلم بر سهر جاری نمیشه که ما از طبق تحلیل ما رو روشن شد یعنی کاملا واضح شد اونجه که داده های شما در نظر میگرین این ماشین قبلا این ماشین قبلا که این شخص بوده این متفقه هم علیه طرفی از این, این شخص ماشین رو به قاضی داده این هم متفقه هم علیه طرفه جبس نیست دو مطلب خود شخص میگه این رشوه بوده من به قاضی رشوه دادم خودش نیست دادم این هم ادعایی هی کنید طرف نیست یک طرف هم میگه نه ایشون به من رشنه نداده من با عنوان حدیه صحیح به من داده من اهل رشنه نیستم ایشون هدیه داده پس اون پسر من بوده هدیه به من داده داره ببینید این مجموع داده ها. بحث ما اینه از این مجموع داده ها میتونه نفس شما افضاع بکنه که برده که به صحیح شده داده ها رو پره هم گذید بسید بحث این نیست که عقد مشترکی از اون بحث خوبه نقطه فنی اینه این ماشین قبلا مال دافعه بوده به دست قاضی رسیده خود دافع میگه آقا این به اصطلاح شورد خود قاضی میگه به یه ما هم رایی که نداریم دیگه مخصوص اینه که ما نسبت اون به هر دو دعا علا حد زن سقا ترجیه بریم بحثتر یا که آیا ما با با این مجموعه معلومات ابداع بکنیم بگیم بلا راست میگه این هفه صحیح هست اون اساس و رو که بناسیری و بغلا باشه به خاطر اختلاف نظام یا حتی به خاطر مثلا هست کنیم که کاشو باید قصد و ارادوی اینها باشه آیا اون اساس و صحیح میتونی اینجا به کار ما بخوره؟ انصافت خیلی مشیه. مضافن با یک دابطه کهی رو هم کردیم بعضی از اموری که بر جده سیره اگر فرض کردیم مثلا سی درصد اقلا و جامعه قبول میکنه هستان درصد قبول نمی کنه درصد قبول میکنه شست درصد قبول نمی یعنی این نسبت قبول و عدم قبول هر دو هست انصافا اثبات سیره با این نمیشه. ده. یه عدد معتنابهی باید باشه تا شارع به ترون سیره اعتماد بکنه او رو حجر قرم داده به مجرد این که ادهی از اغلاح هستن الان بلا اشکال ادهی از هر خبر از هر کسی شما حجر میدوند یا خبر رو از سقه میشوند خود ری آر کوی لیکن لحیمه ها ادهی هم هستن که خبر رو از سقه میشوند رو حجر, میشون حجر میدوند رو از ملون نهیم مزرگان دیگری که بودن اونا میگن خبر سقا حجر نیست مگر این که وسوخ پیدا بشه باید موسوخ و صدور به نقصه کافی نیست اگر مخالرش آمد را وسوخ از بین رفت یه اون خبر حجر نیست پس بنابراین چون بگیم این که از اوحالا سیدی نسته شد این نشون میده که اساس و صحه اختلافی میشه در ما یا حجید خبر حق اختلافی میشه پس با این توضیحاتی که زاده شد انصاف قضیه اصالات صحت اینجا کارایی نداره برگردیم به اول رحص صورت مسئله روشن شد رو از کردیم این دو تا عصد با هم متعارضن اصالت عدم کونهی هده هم صحیحه اصالت عدم کونهی رشت با تا هر دو رو جاری میکنیم دو تا با هم تعارض دارن یک به قاعده زمان برگردیم عدد یک یعنی. خب این یک مبنیست و این که قاعده زمان ثابت باشه از کردیم این قاعده پی شما ثابت نیست من در جلسات گذشته چون شینده بودن هم که دیگر دیدو که من خونستا تو حدیث عزیز اما دیشب یا پنیش شد نیم داری دارم دو اول مکاسبیشون دراسات من مرموهای هاشمی اون نگاه کردم ظاهرن آخوی قبول کنیم من آخرش. بنزم شد ایشون دوره ایشون این من می‌دونم مروایشه دوره دوم دو سوم های خویی بودن در اصول حالا این در مقاصد معالم زان یه دوریشون گفتن در اصل تو مس با حروف که چون اصلا درست نمی‌کنه خودنم به واسه مثال مثلا بگم اما ظاهر عبارات دراسات یه دراساتی هست در محاضره ها محاضره در مقاصد محرمه و چاپ شده همون چاپ نجب بعدن درونم تزی چاپ ظاهرش یکیشون قبول داره. چون من چند دفعه بهش گفتم که قبول ندارن و ظاهراً ایشون نکته محرم یک بار گفتن. نه، هر همونش بم هم سر در نمی ورده. چطور شده؟ ظاهر عبارات محاضرات این است که ایشون علیرغم قبول میکنه یعنی لاغه رد نمیکنه زمان یک رو بیا و محضر بتونه رد نمیکنه اما در مصوال فقاهه رد میکنه منم خودم که ذهن من از درکی که می‌دادن اینا به از خود ایشونش نه ایشون قبول نداشتن سن ضعیف در منجره نمی‌دونسن. اما ظاهر محاضرات نه محاضرات اصول محاضرات مکاسب معادله. اینا گفتن توضیح بدن چون خیلی محتمله که علاوه احتمالاً ایشون در اوائل هم قبول داشتن بعد برگشتن. احتمالش هست. علاوه بر به یه نکته، پس قاعده زمان ثابت نیست. دو مشکل دیگه قاعده علیت این که اینجا شبهه مسداییه مخصصه. چون خود قاضی میگه این تسلیط مدیانی صحیح بوده خودش میگه تسلیط دیگر صحیح بوده رشوه بوده چون ما میدونیم قاعده علالیت جاری میشه مگر جایی که تسلیط مدیانی از قرآن مالح باشه و چون چوبهی مصداقی مخصصه اصل این توضیح بعد در اقوار کنگیدن اصلی نداریم که این جاری بشه این درست مثل همه المرأسو تردن الا خمسی نسنه الا انتکون ا به شک میکنیم یک خانم قرشی هستانه نمیتونیم به عموم المرعت و تردن الله خمسین بکنیم یعنی به عواز مقرآنه نه حکم قرشیه رو میتونیم برش بار بکنیم نه عموم المرعت و را الله خمسین سنه رو بار بکنیم چون شبهات مصداقی مخصص هست. حالا یا به تفسیر یا به اجمال در شبهات مصداقی مخصص هست. توضیح همین چندسی شد هست کردن شاید دیی از خودما جاری میدونن که مربوط خیلیی عی که این توضیح دادن البته آیکویی در بعضی از جاها در کتابشون مده که این نسبت بهعی از این درست کهتون نیست. قال نیستن قا جیک بحثی شدن شدن شده شده و واشون میکن.تون قال را که مشهور به اینقدرمای ما میمثلن اون ن آاضی و خدا کویی دیگران و سیگر همینشه در شما دار مخصص به آن وجود نمی‌شه که این بحثی اشاره پس قاعده زمان یا بین نفس جاری نیست یا به خاطر اینکه شبهه مساوی مخصص به اون مراجعه نمیشه اگر کسی یا در هوا مسلکاً در خصوص این جاری دون بحث دیگری انصافاً جاری نمیشه دو پس کسانی که مخاطره زمان دیگر از این راه بود این راه صادق نشود دو اسالته سهر بی جاری چند راهش شبهه اسالته سهر انصافاً در مانع جاری نمی چه از کتب مرحوم آقای روانی علاوه بر اینکه این اصول وارد است که جایی نمی‌شه استصحاب بقا اون یکی علامه اینکه علامه به مالکی اشاره این استصحاب هم به نظر ما شک داره چون استصحاب نظر ما در این نظر نداره اون دستگیریه قابل یقین نیست ولی شیره روشن نیست هر و این, این شخص یه من این رو دادم یعنی این رو خودش خواسته از اینه کهش خارش رو باید به صورت رشوه دادی یا به صورت داده معلومی سیر و در این جو جهان با تنوز استساب رو جاری بتونن تفسیر در باب استساب. و این راه هم که نشود، پس در مجموعه این راههایی که پیش آمده انصافاً با مشکل برخور این طور میشه نتیجه نهایی برد در این فرق این میشه. ما این طور دیکھ. اگر بناشون اینه که و همون این دعاهای خودشون بمونن مثلا ایشون بگه هره یه سریعه هست اون بگه رشوه محرم است. حرد اینه که اینجا بابد حضاقیه چون کلون یددهی و آخر ینفی و با هست دیدیم توی اون پسطر درستش بکنیم که بگیم حرد با یکیه هر روح هر روح هست با هم محرز. و این نقطه روز من حرد کردم خالبا آقایان در اینجا رفتن دنبال ارزه که زمان بیاره یا زمان نگاریم ما محتمیدیم آوردن زمان و نوازن زمان از لوازم دعواست نباید اصولی که در لوازم دعواست بیاد به درد خود دعوا بخوره محسوسایم که خود مرد مثب دعوا داره آثار خاص خودشه دقیق می یعنی ما نحنفیم فقط این نیست که آیا این شخص زامن هست یا نه فقط این نیست مثلا اگر ثابت شد بیگراهی که این حله صحیح هست و قاضی هم رهنش بود حق ارجاع هم نداره نه فقط زامن نیست اگر اون ماشین موجوده حق استرجاع این هم نداره چون حبه از و زیره و لازم از حق استرجاع نداره کمان که اگر هفته طرف مقابل ثابت شد که رشوه است، دیگر از این که زمان داره دست فقط زمان نیه. اگر ثابت شد قاضیرش رو گرفته هم مرتکب کبیره شده از ادارت ثابت شده هم اضابیر لبون ممکنه از قضاوت من منش بکنن خلقش بکنن پس اون که مطلب بسر به دعواز فقط بحث زمانت نیست که ما بخویم دنبال زمانت داریم و دعواز رو به نظر ما اگر اصلی هم جالی بشه راجع به زمان از از زمانه اون به درد ما نحن نطیقی اون جای این بحث ها رو نمیاره به خاطر اینکه که کلام اینه که در مصبه دروا هر کدوم از دو عنوان فقط زمان نمیارن چیز دیگر هم راشن اگر هدهی صحیحه باشه لازم محناش این است که در بعضی سوال استرجاعه این هم نشید زمان رو بایدان در طلب میگن کاری به طلب نداری، فقط استرجاعه نمیشه و اگر هر بونه آقا روشن باشه این رشوت هم زامنه و هم فاصله و هم صلاحیت خل از قضاوت داره پس لذاب به ذهن ما اگر مصر در محل دعوا باشن و مصق دعوا باشن اصلی نداریم که به نفر یک ح میکنه و باورصداریصبح بابط حالو هست و بعدا کل و ماع در جلا سااحده. کاران یه بهده عورشی و, و اینان ازتون ثابت نمیشه اگر مثال بدن اما اگر دووا عرض شد طرح مسئله و طرح دهوا و طرح مرافع به دیگری شد. دیگر شد. مثلا اون مال، اون ماشین طرف شده، این میگه چون رشت دادن زامنی دنبال زمانه تو باید بدرش رو بدی اون میگه نه من زامن نیستم اگر مقدار دعواد در این مقداره یعنی در بحث زمان و عدم زمانه ظاهرا حق با قاضیه البته اگر بازی زمان رو جاری بود دونیم خب مقدمه مقدره ولیکن ظاهرن معضل کله حق با قاضیه به خاطر این که اینجا اجمالا در اون جامعه بین رشوه و بین حدیه صحیحه یک جامعه هست اونم خودش اقلالاییت داره و اون اینکه که تو خودت مسلط کردی خودت ماشین رو به ایشان پس ایشان ماشین رو به زور از نگرفته ایشون ماشین رو به عنوان یک سبب فاسد که رشو باشه از شما ثابت نیست گرفته ماشین. اصل این که شما به دست خودت ماشین رو به این آقاداتی این ثابته این لاعقل اثبات اباهی تصرف میکنه اده اقلشیه و اگر قاضی بگه من تصرفم جایز بود و این ماشین طرف شد زامن نیستم هر سالت عدم زمان با ایشانه بلکه همون اساس و با ایشان به درد این کار میخوره چون اجمالا این مطلب هست که خود مالک ماشین رو به ایشان داده قبل متعقل در این میان اواهی تصرف کش هست فقط اون اواهی تصرف کرده به نحنی که شرعن ممنوعه اما اجازه مالکی داده، اجازه شرعی نبوده قاضی میگه نه اجازه مالکی و شرعی هر دو بوده هدیه بوده حالا اون بحث هدیه که ثابت نمیشه اما این مقدار رو میسنیم با اساس و صحب تصرف شده یکیم تصرف قاضی در ماشین صحیح بوده ازدفر کنیم این مقدار از سبب تصرف که زمانت رو از او برداره تصرف او در مال مردم بدون اجازه نبوده همین مقدار اساس و سبب میمونه نه اسالت سبب مقدار اینکه اثبات بکنیم هدیه تایبون نمیشه اثبات بکنه اما به این مقدار چون طرفین اتفاق دارن که خود مالک داده اجازه مالکی بوده مالک میگه من اجازه ای دادم که شارع امضا نکرده اون امام دیگه اجازه ای داده که شارع امضا کرده حالا این, ثابت این که ثابت نمیشه این دستنوشتهش که شارع امضا کرده یا نه این الان ما با اصول نمیرسیم اما این که ایشون اجازه داده به دست خودش داده ایشون قاعده علل نیست خودش اورده داده این ما که اثبات میشین مقدار با اساس صحت تصرف اثبات میکنیم تصرف باقی صحیح بوده پس بنابراین میتونه بگیم در اینجا حق با قاضیه. این اگر بنا شد. حالا لحظه من خلاصه بحث بگم. در این فرد دیگه چند قول تا حالا 5 قول 4 قول آمد. قول 5ام فارسی این سلسله این حدیث‌ها و تحصیلی‌ها و خلاصش این شد. اگر در خود دعوای خودشون بمونن ولی که اثبات و آثار اونها رو بکنه غیر از قرآن. انصافاً با متدایی. اگر از اون دعوا رد بشه لوازم دعواکی در معنای حقیقی از مساله استرجاء این بغات و عدم استرجاء به زمان در سال تلف انصافا یعنی این زمانه انصافا در زمانتش حق با قاضیه چون میگه خودشم از این مقدار که مسلمه ما میتونیم این مقداری بگیم تصرف قاضی درست میده این مقدار اما هدیه بوده نه به هر حال خود مالک آورده کار کرده این رو ذو لاعقل لو لا اقل نش اباحه تصرف مالکیه است. بله، شارع اجازه نداده اگر رشوه بودن ثابت بشه. چون نرسوه بودن ثابت شد نه هدیه بودن. اما اون جامعه دارای اثری که اثرش نفی زمان یا به قول مراجعون بر اساس البراءت ما بر اساس برای احتیاج شده نمی‌کنی اینجا میشه قائل شد. اثبات کردن این احتیاض خیلی سخته. یعنی اون اون من رشو بودن خودش دارای دو, دو. جود هسته شکل این داده ولی نیست که موقعا... تسلو جنس نیست که بگرد بحقیل حقیق در خواهی جلال اینجا حیوانیت از ناطریه این از اون بقیل نیست ای این ارفیه اینه به نظر من میگه لاقه شما اجادت دادون دیگه در این مال تصرف کن باز نیست تو میگه خودم دادم رشته دادم پس خودت دادی دیگه اون به زور نگرده این که نبا ثابت میشه دیگه قاضی هم ای این تصرف جایز بود نه اجازه شر... اجازه شرعی و نفی شرعی ثابت نمی اون مالکیش که محرزه اگه این موجود باشه سنن بالا اگه این موجود باشه استعاره کردنش اونجا حله ثابت نشه خودش میگه ابراهیم کردم میخوام برگردم. برگردم دیگه استصاب نمیخواد من این رو اینو گفتم استصحاب قبل این تصرفات استصاب نمیخواد روشن کرد در ذهنمون این طور میاد که در این مسئله اینجور قائل بشیم مسئله... شما دلوقن شو دلوقن شو دلوقن شو دلوقن هست. از کردم زاهر شما ستشید داشتین ظاهر هست من ادار کرکت صورت هست یک قول چارو هست به ارت برگردی برگردیم من واقعا که که خوب رو معقولی که ما دوران بعیاش الله نیستیم کلا یه فعلا ما که خبر نداریم بعیاش الله اشیای چه؟ نه نه از میگیره. دیگه. اوم بایستی دیگه. دیگه. رو دیگه. علا. علا. مبانی خوب خوب. خاله ادامه که یشون مطرح بوده این فرقه 3 مو نکتش یه هر دو سرست مدره سبب فاسده هر دو قبول دارن سبب فاسده این هم کلام قاضی یک سبب فاسدی رو میگه که زمان نمیاره مدری یک سبب فاسد میگه زمان میاره مثلا قاضی میگه هدیه بوده حدیه فاسده بوده باید خب زمان نمیاره مدره میگه نه این رشو بوده پس هر دو مدرین که این دادن غیر شرعی بوده این دادن هر دو با هم مواقعه این مول این فاسدی رو که من از رحمی یک فاسدی است که زمان نمیاره یک فاسدی است که زمان میاره مثلا این هم از کردم پی عبارات اصحاب ما این ارسال مسلمات گرفتن که هدیه زمان نمیاره لیکن از کرده در بقای اقلاقه شوافر من دیدم که اونا میگن هدیه سهی زمان نمیده فاسد میاده اگر قالب زمانشون دیگه این بحث مطرح نیست کما این که این حدیه محرمه تحریمش از قیل جهت رشوه باید باشه ولی اگر جهت رشو چه این هم دیگر نیفهم موارده چه فهم و ولوه در دافه این صورت سوان انها و ولقابض انها حدیتون خاصی غیر از مثلا شرایدی نکردی شده فصانش با این طور <تصفح> انها حدیعتون پاسده لدفع ال غرم غرم مراد زمانه النفسه قاضی یکه درسته این درست نبوده هدیه بوده هدیه پاسده بوده اما رشته نبوده بناهن علاما سبق من ان الحدیعت المحرمه لا که با زمان اصل همین اصطلاح روایت نداریم اون قاعده مالایزمند سیلایوزمند فاسد است ادهم گفتن در خصوص حدی اینطور نیست لایزمند سیلایوزمند فاسد او یوزمند حالا این بحث دیگه الان اینجا نکنی چون این مستند بر قاعده زمانیه اون اصلا ثابت نیست این اصل مطلب البته مرحوم شیخ قدس الله نفسه سر اختلاف رو در بحث ال حرمه داشت ولی اینکه من زال نیستن برای این که بگه ضامن نیستن یه هدیه فاسده اون برای اینکه ضامنه چون طلب شده میشه حریش این مطلب رو که مرحوم شیخ فرمودن اصلا فرم احوان این سفر رو شدن یه کتاب گیرزه اصلا شعر مرحوم شیخ هم عجله که ایشون تصوف بحث فقط قر نیست چون اگر ورشه بودن ثابت بشه قاضی فاسدهه فقط بحث زمان نیست ایشون مرحوم شیخ بحث بوده رو زمان چون بحث سر زمان بوده نه دست زمان نیست اینکه ایشون باید قابل زنه ها حضییتون فاسده لدقل گرمنه نخصه فقط دست زمان نیست برای این که اگر ثابت بشه بشه میشه فاسد از غذابه ممکن خلقش رو کنن چقدر تمام دید؟ هم در شریک هم مرتفعه شبیره شده فاسد میشه پس در حقیقت در فساد هر دو متفقان علیه هستند. لکن یک نقطه ایفتشینه فقطی تقدیم اله ا مرال از اول حرف قابض کرشه است لحصالت زمان فلیه اینجا از کردم من یک اصطلاح بین آلون اصطلاح در کتاب قوانی اول قوانی داره که اص دایه منوی عمومه که اصطلاحا الان براشون شده شده اصلاح لحظی در مقابل اصل عملی بیشتر اصالت رو رو اصول عملی به کار ندارن اما دایه مرال اصلاحظیه اصالت زمان فلیه این اصلاحظیه یعنی عل پس اینجا برگردیم به احصالت زمان به قاعده زمان رو بگیم این آقا دارمه آخر به احصال آخر اصلا اینجا رو به فتح خواه و بیر منصرف نروسه اینجا داره منصرف شده بیر منصرفه لحصالت عدم سبب زمان اصل این از که سبب زمان که اون رشده باشه محفظ نشده و من احصالت زمان اذا خود شئ که ذا زمان قبول دارا شد جناب جدن و من بله و من بکنیم اساس زمان ظاهرن من ظاهرا من اساس زمان بگیم به خاطر اینکه قضیه عللیت ثابت نیست وجهان عقبا ما الاول خود مضمون شئ اختیار که اینجا زامنه یعنی اصالت عدم عصار اسالیت در اینجا اصحابي بعضی ها که من حتی در حدیه فاصله اگر اون قولو گفت این قطع دیگه زاهمه چون حدیه فاصله باشه زاهمه زامنه زاهمه کل کله این نظام بعد مذهب شیخ اینجور نروید کردن کلام خود شیخ شن که در یک اصولی که فرضون با این حرف شدی عجل در از این حرف لان عموما خبر علی الیا ممکن هستند عموم این خبر رد کردن هم در کلمات اهل سنت هم در شیعه این اواخلی منظر علمان ما دردیستر شدن گاهی میگن اموم و مرادشون اطلاقه بناشون به اینه که اموم با اطلاق تر بکنه اموم اون لفظیست که دلاوست شده برای شمول و احاطه به جمعی افراد طبیعت واضده یعنی توی اموم نظرش رو افراده لیکن به نهر شمول و استیعا اما اخلاق نظرش و افراد نیست، او ماهیتی، یعنی. اصلا دو تا نظریه. بعضی میگن اهل الله بده، نظر به افراد بده، نداره. نظر به ماهیت و طبیعت چیز داره. لذا عموم رو با اخلاق فعلا فرق میگذارن. اما در عبارات قران، اینجا مثلا ایشون میشنا عموم خبر، توی لفظ علل یا ماعقلات عمومی نداره، لفظ عامی نداره، مطلقه. عموم نداره. نیازی در زمان إلا از ما تسليث مالک مجانا مگر اینکه مالک تسلیث مجانی ولی اصلو عدم تحقق هیت اصل این است که تسلیث مجانی پیدا نشده خب این همین حرفی است که برها خود شیخ میگه حرف مثبته این اساس عدم تحقق چون اصل اوقات این نبوده پس این نیست این نیستش میشه مصره این مثل همون مثال معروف تعجب از شنیدن می من که مطلب مثلا خودم از همون کتابه کرده این حرفا از شیخ و این مثل این میمونه که بگیم عموم المرءه و در دم الا 50 سنه این عام شامل این زن میشه ولی اصلا عدم تحرر خرج عن ذلک و القریشیه ولی اصلا عدم تحرر القریشیه پس این داخل عموم ولی اصل و عدم تحققه این اصل انصافاً مصبته و قابل اعتبادی است از شیخ مجل و عجله و حاضا حاکمون علا اصالت عدم سبب زمان اصالت عدم سبب زمان این بر او حاکمه این نمیخواستی که شون بگه و اصلا نمیخواست میشه یک تفن هم آخرش داره ایشون که احتمالت نظر مبارکیشون همین باشی که این حرفا خیلی دقیق و حلمی نیست پس این هم مسئله سوم، که اینشالله فقط من یه نکته رو جهستم قبل از رو دربست در دو تقریر قصد رو نگاه کردم عبارات ایشان خیلی مجمله خیلی غیر بازه و غیر مفهومه نیدونم آلا سرشیه همچون مثلان عبارت ایشان رو جنگید و همون محاضرات دیگه چون من نفیه این جنویشی نیدارم عبارتی بخورم و آن خودشون براجعه کنم الان ما کسر در نگیم و تو از اون مدتی اندیکاتورش رو چطور؟ قصی کردم نه، خودش دام. من اون آباداره زداره رو خودش بوده. رو خودش. یه مابده قاضی قرار بود این برشوه شده که رفت من بکنم قاضی ما قرار هست چون من حدیه شده همونی چون من حدیه هست هسته یه اقید حدیه نه بختم من نبتم ما هم نمیفهم چی ویون